دوستان، تعالیم عیسی در زمان خودش سبب بحث های بزرگی شد و امروز هم هیچ تعلیمی در دنیا به تعالیم اون تثیر گذار نیست. به دانشکدی کوچکه کتاب مقدس خوش اومدید. امروز در ادامه مطالعه عهد جدید مطالبی از زندگی عیسی رو خواهیم آموخت. در درس امروز خواهیم دید که عیسی با رهبران مذهبی که بر سنتها بیش از کلام خدا تاکید داشتن چگونه برخورد میکنه؟ بیایید در ادامه بررسی کلام خدا با معلممون همراه باشیم. پس از انجام این کار عیسی به بالای کوهی رفت تا به تنهایی دعا کند. وقتی شب شد او در آنجا تنها بود. در این موقع قایق در وسط دریا به علت باد مخالف گرفتار انواد شده بود. بین ساعت سه و شش صبح ایسا در حالی که بر روی دریا قدم میزد نزدانها آمد. وقتی شاگردان عیسی را دیدند که بر روی آب دریا راه می رود، آنقدر ترسیدند که با وحشت فریاد زده گفتند این یک شبه است عیسی فوراً به ایشان گفت دل قوی دارید من هستم نترسید پتروس گفت ای خداوند اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم عیسی فرمود بیا پتروس از قایق پایین آمد و بر روی آب به طرف عیسی رفت اما وقتی شدت طوفان را دید به وحشت افتاد و در حالی که در آب غرق میشد، فریاد زد خداوندا، نجات هم بده عیسی فوراً رسید و دست او را گرفته گفت ای کم ایمان چرا شک کردی آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد و کسانی که در قایق بودند به پای او افتاده میگفتند تو واقعا پسر خدا هستی به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید ضمن بررسی های کتاب مقدس به انجیل متی در عهد جدید رسیدیم داستانی که الان از باب چهاردهم انجیل متی تا خوندیم شبیه داستانی هست که شاگردان با قایق از دریای جلیل عبور می‌کردند و با طوفان مواجه شدند فقط این بار وقتی طوفان برپا میشه عیسی با اونها نیست و روی آب قدم میزنه وقتی این ماهیگیران دیدن عیسی روی آب راه میره فریاد زدند در زبان یونانی میگه جیغ زدند اونها مثل زنها جیغ زدند نمیدونم تا حالا شنیدید مردها مثل زنها جیغ بزنن یا نه این حرکت مردانه ای نیست می خونیم که اونها ترسیده بودند اونها تمام عمرشون رو در آب کار کرده بودند اما ندیده بودند کسی روی آب راه بره این چیز هیجان انگیزی بود پتروس که یکی از شخصیت‌های کتاب مقدسی مورد علاقه من هست میگه ای خداوند اگر تو هستی به من دستور بده تا من هم بر روی آب نزد تو بیایم و خداوند میگه بیا پتروس از قایق پایین میاد و بر روی آب به طرف عیسی به راه پتروس خوب روی آب راه می میرفت تا اینکه چشم از عیسی برداشت و به باد و امواج نگاه کرد و فهمید که داره چیکار میکنه و ناگهان شروع به غرق شدن کرد چنین به نظر می رسید که وقتی پتروس روی آب راه می میرفت از خودش پرسید آیا این برخلاف قوانین علمی نیست؟ من روی آب چیکار دارم می کنم بسیاری از ما که این داستان رو میدونیم از پتروس انتقاد می کنیم. ما پتروس رو با شکستش به یاد میاریم او را با موفقیتش به یاد نمیاریم آیا تا حالا چنین ایمانی داشتید که در حین طوفان روی آب راه برید؟ پتروس در زمان طوفان روی آب راه رفت. او تنها مرد توی قایق بود که چنین ایمانی داشت. با این حال ما همیشه این واقعیت رو به یاد میاریم که او داشت غرق میشد. ما باید پتروس رو به خاطر ایمانی که داشت و روی آب راه می رفت بیاد بیاریم. وقتی او از ایسا چشم برداشت و داشت غرق میشد، میبینیم که او یکی از کوتاه‌ترین دعاهای کتاب مقدس رو میکنه خداوند ما رو نجات بده. اگر این دعا خیلی طولانی میشد کلمات بعدی صدای قلب قلپ آبی بود که به شکم او فرو میرفت رفت چون که او زیر آب میرفت او فقط وقت داشت که بگه خداوند نجات هم بده و خداوند رو نجات داد این دعای زیبایی مثل دعای باجگیر که در معبد می گفت خداوند به من گناهکار رحم کن دعای پتروسیم بود خداوند مرا نجات بده این دعاییه که همه ما بیش از یک بار نیاز داریم در زندگیمون دعا کنیم نجات نجاتم بده تا حالا به مرحله ای در زندگیتون رسیدید که مجبور بشیدین دعا رو بکنید همه ما در ابتدای ایمانمان با این دعا به حضور خدا میاییم اما در طی سفر ایمانیمون بارها مجبور میشیم این دعا رو بکنیم مخصوصا وقتی که طوفان ها میاد ما مجبور میشیم دعا کنیم خداوند و نجاتم بده تا حالا طوفانی توی زندگیتون داشتید که اونقدر شدید بوده که کسی جز خدا نمیتونست نجاتتون بده به اعتقاد من خداوند به طوفان اجازه میده، شاید حتی اون طوفان رو میفرسته و اجازه میده من و شما به مرحله ای برسیم که شروع به غرق شدن بکنیم. بعد او میگه بیا و روی آب با من راه برو. تاجران های زیادی دارن. یک بار از تاجری پرسیدم که چیکار میکنه و او گفت خب من نوری در انتهای تونل میبینم اما مطمئن نیستم که آیا اون انتهای تونل یا ترنی هست که داره به طرف من میاد. این احساس بسیاری از مردم بازاری امروز هست. طوفان میتونه در تجارت هم باشه گاهی طوفان اونقدر شدید میشه که بازاری ها شروع به غرق شدن میکنن و بعد خدا میگه روی آب با من راه برو و من در این طوفان مراقب تو خواهم بود بصیرت پتروس رو در اینجا ملاحظه کنید پتروس تا زمانی که مطمئن نشد کسی که روی آب راه میره خداونده از قایق بیرون نیومد. او مطمئن شد کسی که با او حرف میزنه خداونده، و او را دعوت میکنه که با او روی آب راه بره در کتاب خروج وقتی بنی اسرائیل از دریای سرخ عبور کردند دریا برای اونها باز شد اونها بر خشکی قدم زدند مصریان هم سعی کردند همون کار را انجام بدن، اما اونها غرق شدند چون خداوند بنی اسرائیل رو دعوت کرده بود که از دریا عبور کنند خدا از مصریان دعوت نکرد که از دریا عبور کنند گاهی در اوج طوفانهای بزرگ خدا میخواد که شما روی آب راه برید زمان هم هست که خدا نمیخواد شما روی آب راه برید اگر خدا از شما میخواد که روی آب راه برید مطمئن باشید که این خداست که شما رو دعوت میکنه مطمئن بشید که این خداست که شما رو هدایت میکنه روی آب راه برید در این داستان پتروس مثال بزرگی برای ما هست در اول قرنتیان ده یازده آیهی به ما داده شده که نشون میده چطور داستانهای تاریخی کتاب مقدس رو در زندگیهامون به کار بگیریم گفته شده که تمامی این چیزها برای اونها پیش اومد تا برای ما سرمشق و عبرت باشه. در این داستان وقتی پتروس روی آب راه میره و زمانی که چشم از خداوند برمیداره عبرتی برای من و شما میشه. وقتی شروع به غرق شدن میکنه و خداوند رو نجات میده، چیزی که خداوند علن به پتروس میگه این بود: چرا دوباره فکر کردی؟ ما نباید در تاریکی طوفان به چیزی که خداوند در روشنایی روز گفته شک کنیم. وقتی باب پونزده رو میخونید، یکی از تعالیم بزرگ عیسی رو میبینید. این تعلیم به صورت گفتگوی آمده شما میتونید حتی این را گفتگوی خسمانه با رهبران مذهبی اون دوره بگید. یادتونه در مقدمه اناجیل گفتم یکی از چیزهایی که باید در اناجیل دنبالش بگردید خدمت مکاشفه عیسی، خدمت احیاء او و کارهای موجز آسا و خدمت حیات بخش او هست. به خدمت بازخرید او نگاه کنید این مرگ او بر صلیب و تمام مفهوم مرگ او بر صلیب است شما همینطور خدمت مکاشفه او را هم ببینید که خدمت تعلیم عیسی بود خدمت تعلیم عیسی در عباد مختلفی دیده میشه ما قبلا دیدیم که عیسی با مسئله ها تعلیم میداد او مباحثات بزرگی میکرد او همینطور در صحبت با مردم تعلیم میداد عیسی وقتی با مردم گفتگو میکرد تعالیم زیادی داده عیسی تعالیم زیادی در گفتگوهای دوستانه مخصوصا با رسولانش داشت. او همچنین در گفتگوهای خصمانه با رهبران مذهبی تعالیم زیادی داشت. وقتی شما گفتگوهای خصمانه او رو می یادتون باشه که او تعلیم میده، خواه گفتگو دوستانه یا خسمانه باشه، او همیشه تعلیم میده. یکی از اون گفتگوهای خصمانه رو در متا 15 و مرقص 7 میبینیم. من خلاصه ای از این گفتگو رو به شما خواهم داد. عیسی شسته و مشغول خوردن غذا هست. فریسیان و علمای دینی آداب و رسومی داشتند. طبق سنت، اونها قبل از غذا خوردن باید دستها رو درست مثل جراحان قبل از عمل جراحی می‌شستند. حالا البته این توی کتاب مقدس نیست. این چیزی مربوط به سنتهای اونهاست. وقتی عیسی نشست و مشغول غذا خوردن شد، او دستهاش رو نشست و رهبران مذهبی از او انتقاد کردند. اونا پرسیدند آیا با دستهای نشسته غذا خواهی خورد؟ رهبران مذهبی به خاطر اینکه عیسی آین پاکی اونها رو به جا نیاورده او رو سرزنش کردند عیسی از این فرصت استفاده کرد که تعلیم بزرگی بده او گفت ای ریا کاران، تمام چیزی که شما بهش اهمیت میدید انسان بیرونیه آیا نمیدونید که انسان بیرونی بخش مهم انسان نیست چیزی که عیسی داشت میگفت این بود که وقتی خدا ما رو خلق کرد او قدری از خاک زمین رو برداشت نفسش رو بر اون خاک دمید و انسان نفس زنده شد از اون به بعد انسان با دو بخش زندگی میکنه در قسمت درونی و در قسمت بیرونی کتاب مقدس به بخش بیرونی ظرف گلی کوچک میگه ظرف خاکی، خیمه یا یک ظرف نابود شدنی کتاب مقدس بیشترین ارزش رو به بخش بیرونی ما نداده بلکه مکررن میگه اون بخش از وجود انسان که او رو به شباهت خدا در میاره بخش درونی او هست اون نفس زنده همون نفس حیات که خدا در اون ظرف خاکی دمید این بخش به شباهت و به صورت خدا خلق شد چون خدا روح است به گفته کتاب مقدس انسان درونی یا بخش روحانی انسان مهمترین بخش است عیسی با این رهبران مذهبی بارها و بارها برخورد میکنه در اولین گردهمایی مسیحیان وقتی که عیسی داشت مقررات روحانی رو تعلیم میداد او گفت مقررات یا پارسایی شما عمودی هست نه افقی پارسایی که رهبران مذهبی داشتند در وهله اول افقی بود اونها هر کاری که می‌کردند به این خاطر بود که دیگران ببینند به این دلیل انجام نمیدادند که خدا اون رو ببینه به عبارت دیگه کار اونها تظاهر بود پس پارسایی اونها افقی بود نه عمودی عیسا به شاگردانش گفت که پارسایی شما باید بیش از پارسایی علمای دین و فریسیان باشه وقتی عیسی با رهبران در سر سفره برخورد میکنه او میگه پارسایی شما ظاهری و پارسایی که اهمیت داره پارسایی درون هست. وقتی پارسایی عیسی را با پارسایی رهبران مذهبی مقایسه کنید خواهید دید که رهبران مذهبی پارسایی داشتند که شرعی بود اما مسیح پارسایی داشت که روحانی بود عیسی همیشه سعی داشت که به روح شریعت بپردازه نه فقط به کلام شریعت رهبران مذهبی پارساییشان سنتی بود عیسی پارسایی رو تعلیم میده که کتاب مقدسی هست پارسایی که عیسی تعلیم میداد بر مبنای کتاب مقدس بود خدا چیز درستی به ما نشون میده شما میتونید اون رو اینطور جمع بندی کنید پارسایی که علمای دین تعلیم میدادن پارسایی ریاکارانه بود و پارسایی که عیسی تعلیم میداد واقعی بود در این زمان وقتی عیسی به خاطر نشستن دستهاش سرزنش میشه او با رهبران برخورد میکنه چون اونها بر بیرون تاکید میکردند در حالی که تاکید باید بر انسان درونی میشد عیسی جلوتر میره و مستقیما به رهبران مذهبی حمله میکنه وقتی عیسی گفت این سنت‌هایی که شما فکر می‌کنید خیلی مهم هستند اصلا کتاب مقدسی نیستند در واقع اونها رو در گوشه گیر میندازه عیسی به میگه اینها فقط چیزهای اخلاقی هستند اینها سنت‌هایی هستند که شما تصمیم گرفتید خودتون و دیگران رو با اون اسیر کنید اینها در کلام خدا نیستند امروز خواهید فهمید که این هنوز هم حقیقت داره. هنوز هم کسانی هستند که خودشون را مسیحی میدونن و کتابی بعلاوه کتاب مقدس دارن. شما اغلب می بینید این کتاب‌هایی که در کنار کتاب مقدس قرار گرفتن بیشتر از خود کتاب مقدس با اونها ارزش و اعتبار قائل میشن. این همون موضوعی بود که بر سر سفره عیسی به رهبران مذهبی تذکر میداد. عیسی اونها گفت وقتی بین سنت‌های شما و کتاب مقدس تناقضی هست هست سنت‌های شما کتاب مقدس رو رد میکنه. او اینطور مثال زد. شریعت موسی گفته پدر و مادر خود رو احترام کن. آیا میدونید معنی این چیه؟ یعنی از پدر و مادرت مراقبت کن. پولس رسول گفت اگر کسی از کمک کردن به های فامیلش خودداری کنه، یعنی مادر خودش یا مادر زنش، او ایمانش رو انکار کرده. او بدتر از یک کافره. شما باید از والدینتون مراقبت کنید. این یکی از راه هایی هست که میتونید پدر و مادرتون رو احترام کنید. خب این رهبران مذهبی در آین خودشون سنتی داشتن که میگفت اگر من وارد خدمت بشوم یا وارد یک کار تمام وقت مسیحی بشوم دیگر به پدر مادرم مدیون نیستم. اونها سنتی داشتند که میگفت تعهد من برای احترام به پدر و مادرم رفع شده چون که من فریسی یا کاتب یا صدوقی هستم. عیسی گفت وقتی شما این کارو میکنید سنت های خودتون رو فراتر از کتاب مقدس قرار میدید و این آشکارا خطا است. ببینید اینجا مسئله تفسیر اونها از کتاب مقدس و یا روی رویگردونی اونها به کتاب مقدس نبود. همونطور که در موعظه سر کوه میبینیم آیین اونها تماما متفاوت از کتاب مقدس بود. مسئله اصلی اینجا اعتبار کلام خدا هست. کتاب مقدس چه اعتباری داشت و آینها چه اعتباری داشتند. مسئله اصلی اینجا به وضوح این هست. اعتبار نهایی برای ایمان در عمل چی هست؟ جواب درست باید همیشه این باشه. اعتبار نهایی برای ایمان و عمل کلام خدا است. بذری ازتون بپرسم آیا کلام خدا اعتبار نهایی رو در طرز زندگی شما داره بشرید و یا سنت‌های بشری رو فراتر از آنچه که کلام خدا میگه قرار میدید این بسیار مهمه که جواب درست به این سوال بدید امروز هم بسیاری جواب صحیحشون اینه اونها همون اشتباه رو کنند و بیشترین اعتبار رو به سنت‌های بشری میدن نه به حقایقی که خدا از کلامش آشکار کرده حالا شما میتونید به برخورد بین عیسی و رهبران مذهبی نگاه کنید و فکر کنید خب من سنتگرا نیستم، من هیچ مرجعی به غیر از کتاب مقدس ندارم و کارهایی که می کنم و ارزشهای من بر مبنای کتاب مقدسه نه بر سنت ها، خودتون رو امتحان کنید، شاید اون اندازه هم که فکر می کنید حقیقت نداشته باشه. از خودتون بپرسید باید و نباید های من چی هستند؟ از خودتون بپرسید آیا بایدها ها و نبایت های من تماما و تنها بر کتاب مقدس استواره؟ کلیسای کوچکی که من در اون بزرگ شدم یک کتاب کوچک آبی رنگ داشت. وقتی میگفتید که شما عضو شدید، شاگرد عیسیا شدید، اونها کتاب کوچک آبی رو به شما میدادند و اون کتاب آبی کوچک به شما میگفت حالا که پیرو مسیح شدید، چیکار باید بکنید و چیکار نباید بکنید. اونها لیست بلندی از بایدها و نبایدها داشتن. وقتی من بزرگ شدم و تبدیل شدم و شروع به مطالعه کتاب مقدس کردم، تعجب کردم چون بسیاری از چیزهایی که در اون کتاب آبی بود در کتاب مقدس وجود نداشت. کتاب مقدس نمیگفت که بعضی از چیزها خطا هستند، اما کتاب آبی میگفت خطا هستند. از خودتون بپرسید چه مقدار از بایات ها و نبایت های شما، چه مقدار از تصمیماتی که در مورد بایتها ها میگیرید، مخصوصا وقتی که این رو در زندگی کلیساییتون به کار بگیرید، واقعا بر مبنای کتاب مقدس هستند و چه مقدار از اونها بر مبنای سنت هستند؟ من تعجب می کنم که مردم بر این باورند که شما نمیتونید یک کلیسا داشته باشید یا یک کلیسا بشید تا زمانی که ملکی بخرید، ساختمانی بسازید و برج بلندی روی اون بذارید و نیمکت هایی در اون ساختمون بذارید و هر یک در ساعت مقرر اونجا جمع بشید. هیچ باب و یا ای در کتاب مقدس نیست که بگه شما نمیتونید های دیگری گرده هم بیایید. شما میتونید به همه کارهایی که انجام میدید ادامه بدید، نه به خاطر اینکه اون در بابی یا ای در کتاب مقدس اومده. بلکه به خاطر اینکه رسمی بوده که این کار را انجام بدید و اون تبدیل به یک سنت شده در این گفتگوی خسمانه عیسی به اون آیین مشایخ میگه ما امروزه بسیاری از این سنت های مشایخ رو داریم ما باید خودمون رو منضبط کنیم تا تفاوت بین کتاب مقدسی و سنتی رو بدونیم به کلیسای در چین فکر کنید الان نزدیک پنج دهه هست که چین به میسیونرها اجازه فعالیت نمیده اخیرا که تا حدودی درها باز شد ما فهمیدیم که حدود 75 میلیون مسیحی در کلیساهای زیرزمینی در چین وجود دارند. اونها ساختمانی با مناره سفید بزرگ ندارند. بسیاری از کارهایی رو که ما می‌کنیم، به روش ما انجام نمی‌دن. اما کلیساهای قدرتمندی در چین وجود دارند. این واقعیت میتونه به ما یادآوری کنه، مسائلی در مورد کلیساها هستند که کتاب مقدسین و مسائلی هستند که سنتی هستند. تعلیم دیگری در این گفتگوی خصمانه عیسی با رهبران مذهبی وجود داره که در مرقص باب هفت در این باره می‌خونیم. این تعلیم عیسی درباره اهمیت نسبی خصوصیات ارسی و اکتسابی هست. برای اینکه منظورش رو به این رهبران روحانی تفهیم کنه که مهمترین چیز مسائل درونی هستند یا انسان درونی هست نه انسان بیرونی، عیسی اینطور گفت که انسان به وسیله آنچه می‌خورد و می‌نوشد نجس نمی‌شود. بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون میاد او رو نجس میکنه حالا اینجا تعلیم مهمی از عیسی را میبینیم یکی از دلایلی که من تعالیم عیسی را دوست دارم اینه که اونها بسیار بجا و عمیق هستند بسیاری از مردم فکر میکنند که مشکلات جامعه ما به خاطر آموزش و عدم توسعه هستند اونها میگن محلات کسیف رو تمیز کنید محیط انسان رو عوض کنید مشکلات انسان حل خواهد شد اما عیسی گفته نه مسئله تأثیری نیست که انسان از بیرون میگیره چیزی که درون انسان هست سبب میشه که به اون تاثیرات بیرونی واکنش نشون بده ما میتونیم بگیم که فقر چیزیه که میتونه جانیانی مثل آل به وجود بیاره و میتونیم بگیم فقر چیزیه که میتونه مردان بزرگی مانند آبراهام لینکلن به وجود بیاره فقر میتونه شخصیت هایی مثل آبراهام لینکلن و یا گانگستر بسازه تفاوت در اینه که اون دو انسان چه واکنشی به فقر نشون میدن؟ مسئله فقر نیست مسئله واکنش درونی انسان به فقر هست عیسی وقتی در مورد فشار آوردن طوفان بر دو خانه در موعضهٔ بالای کوه صحبت میکرد همین حقیقت رو تعلیم میداد یک خانه زیربنای محکمی داره و دیگری نداره خانهای که زیربنا داره نماد کسی هست که تعالیم عیسی رو میشنوه و, و اطاعت میکنه اطاعت از تعالیم عیسی زیربنایی هست که باعث میشه اون خانه در ها مقاومت کنه. زیربنای خانه اول به عنوان واکنش انسان به های محیطش توصیف شده. بنابراین اگر کسی زیربنایی که ایسا شرح میده داشته باشه او میتونه به هر مشکلاتی در محیطش واکنش مثبت نشون بده. مشکل محیط نیست. مشکل نحوه پاسخ دادن به مشکلات هست. چرا شخصی یک جور واکنش نشون میده و شخص دیگری طور دیگری به مشکلات محیط واکنش نشون میده؟ این چیزیه که فرق داره. موضوع اصلی اینه. عیسی وقتی به رهبران مذهبی گفت که از سنت اونها در شستن دست ها قبل از قضا پیروی نخواهد کرد، تعالیم زیبا و عمیقی به ما داد. سال‌ها پیش بحثی در هایت پارک لندن در جریان بود. یک کمونیست در حالی که با یک مسیحی بحث می‌کرد، فریاد زد کمونیزم می‌تونه لباس تازه‌ای به اون مرد جند پوش بپوشونه. مسیحی به اون مرد اشاره کرد و گفت مسیحیت می‌تونه انسان تازه‌ای اون همون لباسها قرار بده. ببینید تفاوت در اینجا هست این حقیقتیه که عیسی در با به هفت مرقس تعلیم میده عیسی تعلیم میده راه حلی که او ارائه میده از درون به طرف بیرون هست نه از بیرون به طرف درون وقتی ما انجیل های همسان رو بررسی میکنیم با تعالیم بزرگ دیگری از عیسی آشنا میشیم این تعلیم در گفتگوی عیسی با پتروس و رسولانش هست. عیسی همیشه به رسولان تعلیم میداد روزی رو به رسولان میکنه و از اونها میپرسه به نظر مردم پسر انسان کیست؟ اونها جواب دادن بعضی ها میگن یهیای تعمید دهنده است و عده میگن الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا هست. ایسا پرسید شما مراکمی دانید. شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. انگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا خوشا به حال تو. چون تو این را از انسان نیامختی بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. این بخش بسیار مهمی هست. اولا اعتراف به این هست که عیسی کیه. این سوال که این مرد کیه، بارها در کتاب مقدس بر اون تمرکز شده. مثلا وقتی که عیسی طوفان رو آروم می‌کنه، سوالی که مطرح میشه اینه. این مرد کیه که طوفان‌ها هم از او فرمان می‌برند؟ نکنه او همون کسی باشه که میگه هست؟ این بار عیسی مستقیما از رسولان سوال می‌کنه. شما مرا چه دانید. داستانی هست که میگه یک شب عیسی به در دانشگاهی میره. و زنگ در رو فشار میده بعد از مدتی مدیر دانشکده جواب میده او به در دانشکده اومد و عیسی به او گفت میدونی من کی هستم؟ رئیس دانشگاه گفت چرا چرا؟ تو اساس وجود ما هستی تو جوهری هستی که به وسیله اون ما در روابط فردیمون تصمیم میگیریم شما میگید ایسا کیه؟ سوال بسیار مهمیه پتروس جواب مستقیم و درستی داد پتروس گفته تو مسیحا هستی تو پسر خدا هستی. تفسیر و خلاصه پاسخ عیسی من فکر میکنم چیزی مثل این هست پتروس تو خیلی باهوش نیستی من بر اساس اعتراف ایمان خارق‌العاده‌ای که مرد عامی مثل تو میتونه بکنه کلیسام رو بنا خواهم کرد یک بار بعد از تعلیم کتاب مقدس در جلسه‌ای که با ادهی از بازاری ها داشتم مردی که تازه ایمان بود بعد از درس پیش من اومد و مثل یک آدم بحت زده به من نگاه کرد و گفت دیک تو چندان باهوش نیستی. این باید روح القدس باشه که توسط تو حرف میزنه من فکر کردم که او به عنوان تازه ایمان بسیرت زیادی داره به نظر من این همون چیزی بود که عیسی به پتروس گفت پتروس تو زیاد باهوش نیستی من بر اساس اعتراف ایمان ای که مرد آمی مثل تو میتونه بکنه کلیسام رو بنا خواهم کرد من توسط انسانهای معمولی کارهای العاده انجام خواهم داد چون روح من در اونها ساکن خواهد شد این اساس کلیسای من خواهد بود و درهای جهنم برون استیلا نخواهد یافت. یکی از دلایلی که این متن مهمه اینه که عیسی برای اولین بار به کلیسا اشاره میکنه. تا این زمان عیسی پادشاهی بود که برای خود پادشاهی بنا میکرد. او افراد کاری برای پادشاهی آسمان استخدام میکرد. او مردم رو تشویق میکرد که اراده خدا را آنچنان که در آسمان انجام میشود بر زمین انجام دهند. حالا برای اولین بار او میگه کلیسا و به این دلیل این متن مهمی است. بلافاصله او این حقیقت رو درباره کلیسا با اونها در میون گذاشت و گفت در رابطه با خدمت اموریلیم خواهم رفت، دستگیر و مصلوب خواهم شد. پتروس به او جوابی داد و میتونیم جواب پتروس رو اینطوری تعبیر کنیم. تو دیوانه ای؟ پتروس شروع میکنه به سرزنش عیسی به خاطر اینکه گفته بود بر صلیب باید مصلوب بشه. اینجا چیز عجیبی هست. عیسی به همون مردی که او رو به خاطر بصیرت روحانیش تحسین کرده بود میگه از من دور شو شیطان عیسی حتی او رو پتروس یا شمعون خطاب نمیکنه. کنه ملاحظه کنید که وقتی پتروس چیز درستی میگه یا کار درستی میکنه عیسی او رو پتروس خطاب میکنه اما وقتی کار خطایی میکنه او رو شمعون خطاب میکنه گاهی به او شمعون میگه و گاهی به او پتروس اما اینجا او رو شیطان خطاب میکنه چون میگه چیزی که گفتی از خدا نیست تو مانع کار خدا میشی این کاملا حیرت‌آوره کاربرد شخصی عملی گفتگوی عیسی با پتروس چیه معنیش اینه این حقیقت شگرف که ما امروزه به عنوان کلیسای عیسی مسیح هر دو پتانسیل رو داریم ما این پتانسیل رو داریم که جز مردم عادی باشیم که روح القدس توسط اونها کارهای خارق العاده انجام میده و میتونیم به خاطر کار روح القدس در درونمان ظرفی باشیم که توسط اون اراده خدا در روی زمین آنچنان که در آسمان انجام میشه انجام بشه و درهای جهنم نتونه به عنوان کلیسای مسیح بر ما غلبه کنه اما اینجا عبرت بزرگی هم هست ما پتانسیل دیگری هم داریم آیا باور دارید که شیطان میتونه از شما استفاده کنه آیا باور میکنید که شیطان میتونه از من استفاده کنه کتاب مقدس میگه که شیطان مدعی برادران هست آیا تا حالا برادران رو متهم کردید کتاب مقدس میگه روزی خدا قدرت شیطان را از او خواهد گرفت در مکاشفه دوازده گفته شده مدعی برادران پایین کشیده خواهد شد بعد پادشاهی با قدرت بزرگی ظاهر خواهد شد چون شیطان مدعی برادران از قدرت ساقط شده وقتی شیطان برادران رو متهم میکنه از چه کسی استفاده میکنه او از برادران برای متهم کردن برادران استفاده میکنه وقتی برادری را متهم میکنید آیا می‌دونید که می‌تونید آلت دست شیطان باشید؟ ما می‌تونیم ظرفی باشیم که خدا توسط اون حرف می‌زنه یا ظرفی که شیطان توسط اون حرف می‌زنه. اینجا باز هم دو مرد روی نیمکت داریم. شما کدامش هستید؟ آیا ظرفی هستید که روح القدس توسط اون حرف می‌زنه و کار خدا رو انجام می‌ده یا ظرفی هستید که شیطان توسطش حرف می‌زنه و هر کاری که می‌خواد انجام می‌ده؟ ما هر دو ظرفیت رو داریم. من فکر می‌کنم که این تضاد بزرگی هست، اما اون تضاد بزرگ بر اساس این تعلیم به ما حق انتخاب داده در این گفتگوی پتروس و عیسی هم عبرت و هم سرمشق هست. به ما گفته شده که وقایع تاریخی کتاب مقدس هم هشدار و هم سرمشقی برای ما هستند ما در زندگی پتروس هم هشدار و هم سرمشق ها را می‌بینیم هر لحظه و هر روز خودتون رو آزمایش کنید آیا شما ظرفی برای مسیح هستید یا مانعی برای کار او. عزیزان، عجب چالشی. اگر پتروس شاگرد عیسی رهبر کلیسا میتونه در یک لحظه خدا رو متبارک بخونه و در لحظه بعد مانع کار خدا بشه، ما باید مراقب قلب‌ها و دهان خودمون باشیم. دایما اینه که این های کتاب مقدس دانش و ایمانتون رو تشویق کنه. امیدوارم خدا کمک کنه که شاگرد وفاداری باشید. امیدواریم که تشویق بشید دوستی رو دعوت کنید که در مرنامه بعدی در کلاس کتاب مقدس با ما هم باشه. دعا می کنم تا اون لحظه، محبت و فیض روزافزون خدا رو تجربه کنید.